سلام داشتم به این فکر میکردم که از دیدن این همه تصویر از دایناسور ها شما چشتتون اولاد کرده که دایناسور بگیمین ولی برحال من در خدمتون هستم چباحتاشو شما خیده بکنم سالهای زیادیه که ما به بهانه تعلیم و تربیت و آموزش علم کودکانمون اونها رو توی چهار دیواری های به اسم کلاس اسیر کردیم و برحال اینجوری داریم باشون پیش میریم پرسش من در, در ابتدای صحبت هم این هستش که آیا این یک روش و یک رویکرد درستی هست برای رشد و تقامل همه هم جانبه کودکان اون که در واقع من تلاش میکنم با عنوان یک مدافع طبیعت طبیعتگرا در حوزه کار با کودکان با شما مطرح بکنم ماجرای اهمیت تجربه طبیعت در دوران کودکی است احتمالا اگه بین شما افرادی, هست... افرادی هستین که به کودکان علاقه مندین یا با کودکان کار می‌کنید یا به محیط زیست علاقه مندین یا اینکه حال ماجرای ساختن دنیایی بهتر و تر برای شما یک دغدغه است شاید صحبت من بتونه بخشش برای شما حد اقل باشه در واقع من تلاش با هم کرد با شما از تجربه هایی که از ودود در 19 سال پیش شروع کردم به صورت شخصی تا بچه ها رو به گردش ببرم و اگر قرار هستش که آموزشی بهشون بدن اون رو از قضای بسته آموزش خارج بکنم، از کلاس ها خارج بکنم و در یک محیط باز پی بگیرم شروع شد و کم کم توی سال که در واقعه همجور بزرگتر شدم و بیشتر یاد گرفتم سازمانیاخته‌تر شد و تبدیل شد به سفرهایی که یک با چارچوک‌های مسئولانه‌تر و علمیتر ما داشتیم و عمدتاً طبیعت محبر بود و به طبیعت می‌رفتیم. ولی در واقع قبل از اینا رو با شما مطرح بکنم فکر کنم که با هم بحثی ضروری بکنیم که واقعا ماجرای آموزش چه بلایی سر ما آورده چه بلایی در واقع سایت تک ما آورده بچه‌های دیروز و امروز در واقع چرا گویزانن از مدرسه چرا در واقع وقتی اسم مدرسه میاد بچه‌ها همش ضرو فرار می‌کنن چرا در واقع انگیزه یا درد برای رفتن به مدرسه ندارن آیا در واقع این انگیزه یادگیری هست که در برچه های ما از بین رفته یک چیزی دیگریم من در میخوام که با خودمون یه مرور بکنیم که هر شود آنچه که تجربه کردیم در دوران مختلف تحصیلمون از دبستان تا در و احتمالا در دانشگاه که چقدر این آموزش هایی که به ما دادن مقتنی بر نیاز ما بود و چقدر در واقع میتونست حال ما رو خوب بکنه نمیدونم شما وقتی دارید این رو با خودتون مرور می‌کنیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم ولی برحال این رو می‌دونم که یعنی امروز با بچه‌های زیادی مواجه هستم که خیلی حالشون از مدرسه رفتن خوب نیست و زمان‌هایی که رفاه هستن انتماداً حال بهتری دارن پروژه ما در واقع موضوع سفرهای طبیعت‌گردی به موضوع ما در سفر های تبیتگری هست گردش هایی که عنوان در طبیعت شکل میگیره و بچه ها در آن سعی میکنند که طبیعت رو لمس بکنن و طبیعت رو همونجوری که هست بفهمنش. توش بسیار زیاد روحیه کابشگری به نوعی دیده میشه و رهایی بچه ها تو این سفرها اجازه دارن که هر کاری که میخواان بکنن و خیلی ما، این ما نیستیم که بهشون میگیم چی کار کنیم، چیکار کار نکنیم, کجا بریم، کجا نریم و احتمالا چی به صلاح شما هست، به چی به صلاح شما نیست خب، در آقا بچه ها این نوع سفر کردن خیلی دوست دارن و به دور از ما سایه والدینشون یا معلمینشون که مرتب دارن کنترلشون میکنن یا مراقبت ازشون میکنن به تجربه تجربه‌های خاصی رو به دست میارم که از حضر من ریشه‌های یادگیری هست و به نوعی روحیه پرسشگری رو در اونا نوع... تقنیت میکنم. اما شاید برای این سوال باشه که خب اگه دعوان تا این حد آزادی داره هست که بچه‌ها داشته باشن نقش یک مثلا مربی، یا یک همراه یک بزرگتر توی این سفرها چی هست ما توی این سفرها سر کنیم باشیم تسهیلگر در واقع بچه ها باشیم و تصفیرگر به این معنا که در واقع هم, هم قطعی که ما لطف رو کنیم و با حس نکردن بچه ها به اون چار دیواری های کلاس اون روحیه کامشگری رو ازشون نگیریم احتمالا مینی از رسالت خودمون رو در وقت آموزش با عدم آموزش مستقیم ایجاد کردیم, کردیم نخشه خودمون و در اون نیمه دیگر در رسالت یک آموزشگر رو من در ایجاد یک زمینه مناسب و یک شرایط مناسب در هر شود که قضای یادگیری میدونم مدرسه طبیعت حدود سه ساله که در واقع ایران شکل گرفته و امروز صبح ما این شانس رو داشتیم افتخار داشتیم که دوره 11می مدرسه طبیعت رو در دماوند تاسیس بکنیم یک پروژه ملی هست حتما در آینده بیشتر ازش خواهید شنید و هدف در مدرسه طبیعت تلاش بر این هست که جای آموزش با غذای یادگیری جا به جا بشه یعنی این ما نباشیم که به عنوان بزرگترها تصمیم بگیریم که بچه ها باید و بدونن و چیو ندونن و این بچه ها باشن که میگرد و خودشون در واقع انتخاب میکنن که دوست دارن چیکار بکنن و سرشد از غذایی دذشت توی عرض شود آخه میدونید یه ماجرایی هست هستگاه او ماها وقتی که در نقشه یک آموزشگر هر کجا که ظاهر میشیم اصولاً فکر میکنیم که یک دانایی کل هستیم که ما میدونیم و اون مخاطبمون نمیدونه و ما باید دانش خودمون رو در واقع بهش منتقل بکنیم و این رو شما تو مدرسه ها چون قچه ها احتمالا خیلی زورشون رو که بخوان بیان خودشون رو داشته باشن فرم های شدیدترشون می بینیم بچه من بچه‌ها از طبیعت خیلی دوست دارم چون اونجا کسی نیستش که بهشون بخاله زور بگه یا بکن نکون بکنه و منظورم از این ها دوره نقابه اولیه کودکی هست یعنی شاید مثلا تا حدود 10 تا سالگی و حوزه های آموزش محیط رو ما فکر می‌کنیم که خیلی براش دیر نیست و نباید عجله بکنیم تا بچه‌ها رو با تکنسون‌ها واکسین‌ها یا دانش محیط زیستی آشنا بکنیم و این پروژه می‌تونه بعد از اینکه بچه‌ها سنشون بیشتر شود شکل بگیره و حتما تاثیر بهتری داره. انگار دوره‌ای هست که جابجا جا شده و ما سعی می‌کنیم به قول یکی از اساتید ما ما در رابطه تلاشون برای است رو علو به طبیعت بکنیم و بچه‌ها رو با دانش مهندسی آشنا بکنیم. از صورت که این کاملا در عکس است و جریان‌های نوین آموزشی و علمی دارن نشون میدن که دوره کودکی دوره‌ای هست که باید اجازه بدیم کودک خودش کشف بکنه و ما خیلی کاری به کارش نداشته باش امید برام که مثل باشم برای شما بگم از اینکه که ما داریم درواچه روی کردی رو دنبال بکنیم از اینکه که به حفظی کردیم